اما هاروت ماروت اینها در شهر بابل آمدن بابل این بابل ایران نه بابل داخل عراق در اونجا آمدن در شهر بابل سحر و جادو اینقدر بر اونها حاکم شده بود که مردن مردم اون زمان بزرگترین چیز برای اونها سحر و جادو بود اگر یعنی کسی سحر و جادو و اینها رو یاد داشت یعنی بزرگترین انسان مانن یه علاقه استی که پزشکی واجد در نظر می‌آدند و یه یه خیلی تشویق‌انداز تاش پزشکی میگن که پول وازش خوب پولش دیاده، بخاطر پولش. اون خاطر که کمال بودن علاقه کمالی که نیست داخلیونه. فکر می‌کنم پول دارم میگن که علاوه پزشکانی دی هر دانشجوی هم درس می‌خونه و بخاطر علاوه من بر پزشکی قبول بشم، چون پولش خوبه. دو هدف اینه است. اما در اون زمان سهر و جادو در هر زمانی یک چیزی برای اون مردم مهم بوده. در حال, حال در آلمان امروزی، بالاترین پوز از معلم هست. بسیار در نظام پزشکی مهم است. در آلمان معلم میگردد مهم است. حالا هاروت ما در در بابل جادوی هاروت ما رو دیگر جادو خیلی بالا بود. جادو به حدی بالا بود که حق از باطل تشکیل داده نمیشود شد یعنی طور سهر و جادو میکردند اگر پیغمبری اگر پیغمبری موجزه ها رو نشان میداد برای مردم بین موجزه و, و سهر فرق نمود حالا داری پیغمبر در دار موجزه نشان یک جادو میکنه این که بتونن بین پیغمبر موجزه پیغمبر و سهر رو تشکیل بزن بسته مشکل شده بود هم چیز بود سحر و جادو خداوند متعال تا فریشته ن هاروت و ماروت فرستاد و انا تا که مردم را از اصول و قوانین سهر یاد بدهن تا بتوانند معجزه و صهر از هم تشخیص بدهن اونها رو تعلیم میدن این سحر، این جادو این معجزه تا مردم تون راست را پیدا بیکنم با مردمی بفتن نگاه که این داره و سور ما نشان بیدی به این سور بین ظلمار فاصلی میاندادن سیحر میکنن اما اگر نمیکنیم ما یاد میدید انجا احد و پیمان بیدید که نمیگیش شیطانی هر شوه نمیکنید اونها بی ما نمیکنیم با اونها را هارون شان میدادن داستان واقعییزی یا حالت معروض به این سورت هدو تا فرشته بودن